Thank <laughs> you. سیکارد معمور مخفی خصوصی هنوز به مادرم زنی نزده بودم تا حالا حتما از قبرستان برگشته بود بهتر بود قال غزیه را بکنم تازه می توانستم به او بگویم که میتوانم بخشی از پولی را که ازش قرض کرده بودم پس بدهم البته نباید کل مبلغی را که میگرفتم لو میدادم چون آن وقت بیشتر از آنی که میخواستم به او بدهم طلب میکرد حالا خیلی بیشتر راقب شده بودم دفتری بگیرم. یک ماشین و یک منشی. مادرم می توانست منتظر بماند. به این عادت داشت. او که کاری جز این نمی کند که پول را بگیرد و بگذارد توی بانک و این آخرین جایی بود که من می خواستم پولم آنجا باشد. من دفتری می خواستم که تابلوی تلایی سی کارد مأمور مخفی خصوصی کنار درش آویزان باشد. و یک منشی مامانی که نام را مکتوب کند. آقای کوپرتینو عزیز از بابت پاداش 500 دلاری شما به خاطر پیدا کردن دخترتان بسیار ممنونم مایه خوشبختی است که با مرد محترمی مثل شما طرف حساب باشم هر وقت دوباره دخترتان را گم کردید می دانید که کجا می توانید مرا پیدا کنید دفعه آینده را مهمان ما خواهید بود ارادتمند شما سی کارت ماشینی هم میخواستم تا بتوانم بدون اسا شدن کف کفشام توی شهر گشت بزنم کارگاه خصوصی که پیاده خیابان را گس کند یا سوار اتوبوس های بی کلاس شود یک جایی کارش میلنگد. مشتری ها خوش ندارند با کارگاه خصوصی قرار ملاقات بگذارند که بریت اتوبوس از جیب پیراهنش زده بیرون. اما حالا بهتر بود به مادرم زنگ بزنم. چند بلوک را گس کردم تا به یه باجه تلفن رسیدم. سکه پنج سنتی را انداختم و گوشی را دم گوشم گرفتم. بووق آزاد نداشت. دکمه پس گرفتن سکه را زدم اما پنج سنتی همانجا توی تلفن مانده بود زامن گوشی را دوباره زدم سکوت همچنان ادامه داشت و البته این سکوت اصلا طلا نبود نیکل بود پنج سنتی لعنتی من نکوتی یک پنج سنتی از دست داده بودم شرکت معزم مخابرات دوباره مرا تیغ زده بود چند تا مشت حواله تلفن کردم تا درست حسابی حالیاش کنم جیب بعضی ها را به همین سادگی نمی شود خالی کرد از باجی تلفن آمدم بیرون و نصف بلوک را گشت کردم سر سربرگرداندم و نگاه خشم آلودی به تلفن انداختم پیرمردی توی باجه ایستاده بود گوشی دستش بود و داشت حرف می زد خب این انصاف نبود نمیدانستم پیرمرده از پنج سنتی خودش دارد استفاده می کند یا نه شاید به شکلی کاملا ناعادلانه به خاطر گیر کردن سکه من توانسته بود کار خودش را راه بیاندازد تنها انتقامی که می توانستم در آن وضعیت بگیرم این بود که آرزو کنم اگر با سکه من زنگ زده به دکترش زنگ زده باشد و به خاطر عود وحشتناک بواسیرش از او کمک بخواهد در معامله‌ای که به زیان من بوده تنها از این طریق می توانستم برنده شوم برگشتم و رفتم تا به ایستگاه اتوبوس در خیابان کلی رسیدم میخواستم با اتوبوس بروم سمت پزشکی قانونی میتوانستم تاکسی بگیرم اما تصمیم گرفتم اتوبوس سوار شوم تا این به نوعی وداع من با اتوبوس سواری هم باشد چون دیگر هیچ وقت مجبور نبودم سوار اتوبوس شوم زن جوانی هم منتظر اتوبوس ایستاده بود بفهمی نفهمی خوشگل بود برای همین تصمیم گرفتم مال و مناد تازم را با عرضه یک لبخند پت و پهن گفتن شب بخیر به او محک بزنم او لبخن نزد شب بخیر هم نگفت با حالتی معذب پشتش را به من کرد ناگهان سر اتوبوس از یک بلوک آن طرفتر پیدا شد یک دقیقه بعد توی اتوبوس نشسته بودم و دوباره راهی پزشکی قانونی شده بودم اول من سوار شدم و وقتی روی صندلی جلو نشستم زن جوان هم سوار شد و رفت عقب اتوبوس بنشیند من هیچوخت پیشه نبودم اما به محض اینکه جسد را می و باقی دست مازم را میگرفتم گرفتم به کل عوض می شد و مشهورترین ترین کارگاه خصوصی سان فرانسیسکو بلکه کالیفرنیا و بلکه آمریکا می شدم. چرا به چیزی کمتر از شهرت در کل این مملکت لعنتی قناعت کنم؟ از سایه نقشه مطمئنی برای دزدیدن جسد ریخته بودم. هیچ اشکال و اشتباهی نمی در کار باشد. برنامه بی ای و بود. پس روی صندلی آرام گرفتم و بنا کردم به رؤیاپردازی درباره بابل. ذهنم راحت و بی درد سر به گذشته ها برگشت. دیگر توی اتوبوس نبودم. من در بابل. بودم فصل یک، اسمید اسمید، در جدال با سایه های روبوتی. در اعماغ آزمایشگاه سری سردابهی که زیر درمانگاهی مخفی شده و در واقع دامی برای فریفتن بیماران از همه جا بیخبر و بدر کردن آنها به سایه های روبوتی بود دکتر عبدالفورسایت یک بیمار سایه شده را از اتاقک که سخت و ساز شیطانی خود بیرون می برد. در حالی که بافت سایه را بررسی می‌کرد گفت از آن خوب هاست. نوچش روتا که کنارش ایستاده بود و به آن سایه نگاه می کرد گفت شبا نابغید. بعد از تحسین ده ساز خود دکتر عبدالفورساید سایه را به روتا داد. و روتا سایه را برداشت تا روی تل دو متری سایر سایه ها بگذارد. آنجا هزاران سایه روی هم تلمبار شده بود. و از این تل ها ده دوازده تایی در گوشه و کنار آزمایشگاه دیده می شد. دکتر فورسایت آنقدر سایه داشت که به شب مصنوعی بزرگی بسازد. آنقدر بزرگ که به شهر کوچکی را مسخر خود سازد. برای عملی کردن نخشهش فقط یک چیز کم داشت. این چیز لازم همان بلورهای جیوه ای بود. که دکتر فرانسیس پزشک انسان دوستی که زندگیش را وقف نیکوکاری در بابر کرده تازه اخترا کرده بود. دکتر فرانسیس نزدیک دروازه ایشتار با دختر زیبایش سینتیا زندگی می کرد که خواهرخوانده‌ای به نام نانادیرت داشت. دکتر فرانسیس قصد بلورهای جیوه را به عنوان سوخت سفینهای مورد استفاده قرار دهد که برای سفر به ما ساخته بود. روتا سایه را روی سایر سایه ها گذاشت. سایه صندلساز بدبخت ای که برای معاینه زخمش به درمانگاه آمده بود. اما همانجا گرفتار شده بود تا یک سایه و بخشی از یک نقشه شیطانی شود. روتا پیش ارباب شرورش برگشت و گفت: حالا چه باید بکنیم سر و رب؟ دکتر عبدالفورساید گفت: بلورهای جیوه آن وقت کارمان راه می افتد. و هر دو خبیسان ای زدند. در واقع طوری قهقهه میزدند که انگار کارو باری که راه انداخته بودند بازنشستگی نشستگی بر نمی دارد. در صورت بازنشستگی هیچ حق و حقوقی در کار نبود. هفتیرکش ترفررس ناگهان متوجه شدم که کجا هستم و مثل یک و ترافرز در یک فیلم کابایی دست انداختم و سیم زنگ را کشیدم تا اتوبوس توقف کند. اقدامم درست به موقع بود. چند ثانیه دیر جنبیده بودم ایستگاه را رد کرده بودم. رویای بابل دیدن هم فوتو دارد. یک اشتباه محاسبه کافی است تا چند چهارراه راه از ایستگاه مورد نظرت دور شوی. خوشبختانه این آخرین اتوبوس سواری من بود. و دیگر لازم نبود نگران رد شدن اسقاه مرده نظرم باشم خدا رو شکر یک بار در حال رویا دیدن در باره بابل تا آخر خط رفتم و پول کافی هم نداشتم که برگردم و راننده هم اجازه نمیداد مجانی برگردم حتی بعد از اینکه براش توضیح دادم که پولی توی جیبم نیست و دروغی هم گفتم که خوابم برده بوده راننده با بی‌اعتنایی آشکار به وضع اسفبار من گفت من گوشم از این قصه پره تو نمیتونی با تحویل دادن این قصه ها به جای بلید سوار اتوبوس منشی؟ من یه پنج سنت میخوام. نداری زحمت زحمتو کم کن. قانونو که من تو نمیکنم نمی‌کنم. برای برگشتن با یه پنج سنتی به صرفی. منم یه کارمند معمولیم. پس از اتوبوس من پیاده شو. از اینطور حرف زدن آن حرام حرامزاده اصلا خوشم نیامد. هی میگفت اتوبوس من انگار که خودش صاحب بانکوfti است. گفتم تو صاحب این اتوبوس هستی؟ گفت: منظورت چه؟" گفتم منظورم اینه که تو صاحب این اتوبوس هستی؟ هی hey, میگی اتوبوس من. برای همین فکر کردم شاید تو صاحب این اتوبوس لعنتی هستی و شما با خودت میبریش خونه و باهاش میخوابی. شایدم باهاش ازدواج کردی. اتوبوس زنته. دیگر هیچ حرفی نتوانستم بزنم چون راننده همانطوری که سر جاش نشسته بود با مشتی دخلم را آورد. ضربه برق‌آسا بود. ده دقیقه بعد به هوش آمدم. تو پیاده رو جلوی داروخونه ویلو شده بودم. برای آنکه اتوبوس سواریم پایان بندی بی و نقصی هم داشته باشد یکی باید مرا به خود می آورد. سگی که به من می شاشید شاید فکر می کرد که من شیر آتش نشانیم به هر حال هن روزها دیگر سپری شده بود من 800 دلار در جیب داشتم و این آخرین اتوبوس سواری من بود از اتوبوس که پیاده شدم سرم را برگرداندم و رو به راننده داد زدم گور بابات متحیر مانده بود ش بود دیگر هیچ سگی به من نمی